بسم الله محملل ماهیم به نام خداوندی به اندازه میتگان نههایت بارح قسم با بامدار و ب شبهای دهگانه و با جفت و تاق و بشب چون سپری شود. آیا در اینها سوگندی برای خرتمدان هست؟ آیا دیدی که پرودیگاهت با آد چی کرد؟ با شهر ارم دارای ستون های بلند چی کرد؟ که مثل آن در هیچ سرزمین ساخته نشده بود و با قوم سمود که سخراهای بزرگ سنگ را در وادی تراش داده بودند و با فرعون صاحب میخوا چون اینها کسانی بودند که در شهرها بنای سرکشی را گذاشتند و به فساد پیشگی زیاد دست یا زیدن آن پروردگارت تو عذاب را به شدت بر آنها فروریخ بگمان پروردگارت در کمینگاه است اما انسان چون وی را پروردگارش آزمایش کند و او را عزت و نعمت عطا کند با تکبر می گوید پروردگارم مرا عزت داد و اما چون او را آزمایش کند و روزی او را بر وای تنگ سازد در یعس می گوید پروردگارم مرا احانت کرد چنین نیست که شما می پندارید بلکه واقعیت این است که شما یک تیم رایزت نمی کنید یک دیگر را به تعام دادن به متاج تشویق نمی کنید و حقوق میراسی دیگران را همگی و تمامی می خورید و مال و دارایی را با عشق بسیار دوست دارید چنان است که شما می پندارید هنگامی که زمین به کوبیدن بسیار شدید بعد از کوبیدن دیگر کوبیده شود و پروردگار تو بیاید و فرشتگان در سفه بعد از سفه دیگر قرار گیرند و جن و انس را در محاسره بکشند و دوزخ در آن روز آورده شود در آن روز است که انسان پنشنو می شود ولی این پنشنیدن او چی فایده ای را به هم خواهد داشت؟ می افسوس است به حال من ای کاش چیزی یعنی اعمال نیکو را برای این زندگی یعنی آخرت خیش از پیش می فرستادم. پس در آن روز هیچ کس به مانند عذاب او جله و علاشان و او عذاب نمی کند و هیچ کس به مانند زنجیر و چک بسته کردن او بسته نمی کند و تو ای انسان آرامش یافته به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که تو از او خوشنودی و او از تو خوشنود پس در ظمرۀ بندگان مخلص من داخل شو و در بهشت من درآی